و الله سمیعا علیمه خداوند بانگ برداشتن به سخنان ناروا را دوست ندارد مگر از جانب آن کس که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند شنوای داناست اِن تَبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرا اگر کار نیک آشکار کنید یا آن را پنهان دارید یا از بدی و ستمی که به شما رسیده گذشت نمایید پس بدانید که خداوند آمر زندی توان است. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون <تصفيق> نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون و یریدون این بین کسانی که به خدا و پیام برانش کفر میورزند و میخواهند میان خدا و پیام برانش جدائی بیندازند و میگویند به بعضی ایمان میآوریم و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند بین این و آن راهی برای خود برگزینند اولئک هم کافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا آنها در حقیقت کافرند و برای کافران عذاب خارکننده ای آماده کرده ایم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أحد منهم اُلَائِكَ سوف سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ وكان وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچیک از آنان جدائی نیفکندند اینان خداوند به زودی پاداششان را خواهد داد و خداوند آمرزندی مهربان است یسألو که اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا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 از تو میخواهند که کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی همانا آنها از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان بده پس به خاطر این ظلم و کاریشان ساقه آنها را فرو گرفت سپس بعد از آنکه معجزه و دلایل روشن برایشان آمد گوساله را به خدایی گرفتند و ما از آن گناه درگذشتیم و به موسی حجت و برهان آشکاری دادیم. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدو في السبت و لهم لا في السبت اخذنا منهم میثاقا غليظا و به خاطر گرفتن پیمان از ایشان تور را بر فراز آنها برفراشتیم و به آنها گفتیم سجده کنان به دروازه بیت المقدس داخل شوید و نیز به آنان گفتیم در روز شنبه تجاوز نکنید و از سید ماهی دست بکشید و از آنان پیمان محکمی گرفتیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بكفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا پس به خاطر پیمان شکنیشان و انکار آیات خدا و به ناحق کشتن پیامبران و به این گفتهشان که دلهای ما در پرده است بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهای آنها مهر زده است پس جز اتهی کمی ایمان نمی آورند و به و مریم بهتانا عظیما و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند و قولهم ان قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا تباع وما قتلوه يقينا ونيز بخاطر این گفتهشان که ما مسیح ایسا پسر مریم پیام بر خدا را کشتیم در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند امر بر آنها مشتبه شد و هر آینه آنان که در باری قتل او اختلاف کردند قطعا از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و به یقین او را وفعه الله الیه و كان الله عزیزا حکیما بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند پیروزمند حکیم است م من هل الكتاب إَّ لاؤمنَّ به قابل متی ووم القامت يكون عمشهیده و کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگش به او ایمان میآورد و ایسا روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود ف من عليهم طیبات احلت لهم وبصدهم پس به کیفر ستمی که قوم یهود مرتکب شدند و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا چیزهای پاکیزه ایرا که برایشان حلال بود آنها حرام کردیم و اخذهم وقد وقدنه عنه واكنهم اموال الناس بالباطل واعتذنا للكافرين منهم عذابا علیما. و نیز به سبب ربا گرفتنشان در حالی که از آن نهی شده بودند و نیز به سبب آنکه اموال مردم را به ناحق می‌خوردند و ما برای کافرانشان عذاب دردناکی آماده کردیم لَكِنَ الراس فِي الْعِلْمِ العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما مِنْ من قبلك والمقیمين و المؤتون والمؤمنون و المؤمنون بالله و اليوم الآخر اولئیک اجرا عظیما ولی راسخانه در علم از آنان و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند و همچنین بر پادارندگان نماز و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قیامت به زودی به همه آنها پاداش بزرگی خواهیم داد اینا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و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 همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داوود زبور دادیم و قد قصصناهم علیک من قبل و لم نقصصهم علیک وكلم الله موسى تکلیمه و پیام برانی که سرگزشت آنها را پیش از این برای تو بیان کرده ایم و پیام برانی که سرگزشت آنها را بیان نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت رسلا مبشرين و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد وخداوند پیروزمند حکیم است لکن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لیکن خداوند به آنچه بر تو نازل کرده است گواهی میدهد که آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی میدهند و اگرچه چه گواهی خدا کافی است این الذین كفروا و وصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا هر آینه آنان که کافر شدهاند و مردم را از راه خدا بازداشتند محققا در گمهی دوری گرفتار شدهاند. این <تصفيق> الذيین كفر ووا ملم میاک الله یافرلهماللیدی اونطرریبا آنان که کافر شداند و ستم کردهاند خداونند. هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راهی هدایت نخواهد کرد الا طريق جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا وكان ذلك على الله يسيرا مگر راه جهنم که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار بر خداوند آسان است يا مردم الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم تكفروا پیامبر با حق از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید پس یقیناً بدانید که آنچه در ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانای حکیم است یا <تصفيق>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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ای اهل کتاب در دین خود قلب نکنید و در باری خدا جز حق نگویید همانا مسیح عیسی پسر مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به مریم نمود و روحی از جانب اوست پس به خدا و پیام برانش ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است از این سخن بازایید که برای شما بهتر است، خدا تنها معبود یگانه است و از این که فرزندی داشته باشد پاک و منزه است، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند برای کارسازی کافی است. لی يستنکف المسيح أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ مسيح هرگز آباد ندارد که بندی خدا باشد. و نه فرشتگان مقرب عبادارند و هرکس از بندگی او سرباز زند و تکبر کند به زودی آنها را در قیامت نزد خود محشور خواهد کرد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَصَالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ واما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا الیما ولا وَلَا لهم ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پاداش هایشان را به طور کامل خواهد داد و از فضل خیش آنها خواهد افزود و اما آنان که ابا کردند و تکبر برزیدند آنان را به عذابی دردناک عذاب می و برای خود غیر از خدا دوست و یاوری نخواهند یافت یا ایوه الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا و انزلنا ای مردم همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد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 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَئِينَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فتوا میخواهند بگو خداوند در باری کلاله برای شما فتوا میدهد اگر مردی بمیرد که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد نصف انوالی را که به جا گذاشته برای اوست و او تمام مال خواهر را به ارث میبرد. اگر خواهر بمیرد در صورتی که فرزند نداشته باشد و چنانچه؟ دو خواهرش باقی باشند دو سوم ترکه را میبرند و اگر چندین مردان و زنانی برادر و خواهر باشند برای هر مرد دو برابر سهم زن خواهد بود خداوند احکام خیش را برای شما بیان می میکند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به خداوند بخشندی مهربان یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقوم احلت لکن بهیمت الانعام الا ما یتلا عليكم غیر محل الصید و انتم حرم این الله یحکم ما یرید ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید گوشت چهار پایان برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود و در حال احرام شکار را حلال نشمارید همانا خدا بند هرچه بخواهد حکم می یا ای الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتعاونوا تعاونوا على البر و ولا تعاونوا على الاسم والعدوان و الله این الله شدید العقاب ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت شعائر الهی را نگه دارید و بی حرمتی به آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بینشان و نشاندار را و نه قاصدان خانه خدا را که فضل و خوشنودی پروردگارشان را می طلبند. و چون از احرام بیرون آمدید پس شکار کنید و دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز نباید شما را به تعدی و تجاوز وادار کند و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید و از خدا بترسید بیگمان خدابند سخت کیفر است.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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطره فی مخنصت غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام زبه نام غیر خدا بران برده شود و حیوانات خفه شده و بازر بمرده و از بلندی افتاده و بهار به شاخ حیوان دیگری مرده و آنچه درندگان خورده باشند مگر آنکه زب شرعی کرده باشید و آنچه برای بتها ذبح شده و آنکه با تیرهای فال، بخت و قسمت طلب کنید همه بر شما حرام شده و روی آوردن به تمام اینها فسق و نافرمانی است امروز کافران از آیین شما معیوس شدند بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. اما هر کس که از گرسنگی درمانده شود و ماگل به گناه نباشد مانعی ندارد که از گوشت های ممنوع بخورد پس بداند که خداوند آمرزنده مهربان است لهم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 و الله این الله سریع الحساب از تو میپرسند چه چیز برای آنها حلال شده است بگو پاکیزه ها برای شما حلال گردیده و نیز آنچه از سید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت شده که از آنچه خدا به شما آموخته است به آنها آموخته اید بر شما حلال است پس آنچه برای شما سید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از خدا بترسید بیگمان خداوند زود شمار است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 و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده و همچنین تعام اهل کتاب برای شما حلال است و تعام شما برای آنها حلال است و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاکدامن دامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده. هرگاه که مهر آنها را بپردازید در حالی که پاک دامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده برای شما حلال است. و کسی که به ارکان ایمان کفر ورزد همانا عملش تباه شده است. و او در آخرت از زيانکاران خواهد بود. يا أيها الذين <سؤال> آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق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 وإن كنتم الله أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممنعمته نعمته عليكم ولكن يريد, ليطهركم نعمته عليكم, ولكن يريد ليطهركم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي كسانيك چون به نماز برخواستید پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک بشویید و اگر جنوب بودید پس خود را پاک سازید و قسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده یا بازنان تماس گرفته و آمیزش کرده باشید انگاه آب نیابید پس با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورتتان و دستهایتان بکشید خداوند نمی بر شما دشواری قرار دهد بلکه می شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که و نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور تا بيد آورید نعمت خدا را برخیش و به یاد آورید پیمانی را که با تأکید از شما گرفت، آن هنگام که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم، و از خداوند بی بیگمان خداوند، از آنچه درون سینه هاست آگاه هست. <تصفيق> أيها الذين آمنوا كونوا قوىمين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أنلا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که ادالت نکنید ادالت کنید که به گاری نزدیک نزدیکتر است و از خدا بترسید همانا خداوند به آنچه میکنید آگاه است. وعد الله الذين آمنوا و عمل الصالحات لهم مغفرة واجر خداوند به آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعدی آموزش و پاداش بزرگی داده است. وَالَّذِينَ كفروا وكذبوا بِ اولئك أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تگذیب کردند آنان اهل دوزخند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 ای الله المؤمنون ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که گروهی از دشمنان قصد کردند که به سوی شما دست دراز کنند پس خداوند دست آنها را از شما باز داشت و از خدا بترسید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لَئِنْ أَقَامْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الَّا عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ أكفّرّا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جَنَّاتٍ أدخلنكم جنّات ولا أدخلنكم تجري من تحتها الأنهار فمن کفر بعد ذالک منکن فقد ضل سواء السبیل همانا خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده نقیب برانگیختیم و خداوند به آنان فرمود من با شما هستم اگر نماز را برپاداشتید. داشتید و زکات را پرداختید و به پیام بران من ایمان آوردید و آنها را یاری نمودید و به خداوند قرز الحسن دادید یقینا گناهانتان را از شما میزدایم و شما را به باقهای از بهشت وارد می کنم که نهرها از زیر درختان آنجاری است پس هر کس از شما بعد از این کافر شود؟ مسلما از راه راست منحرف گردیده است فبما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على قائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين پس به خاطر پیمان شکنیشان آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند و پیوسته تو به خیانت تازه از آنها آگاه می شوی مگر اده کمی از آنان پس از آنها درگذر گذر و روی به گردان بیگمان خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.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 و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون و از کسانی که گفتند ما نسرانی هستیم پیمان گرفتیم پس بخشی از آنچه چرا که به آنان پند داده شده بود فراموش کردند لذا ما نیز بین آنان تا روز قیامت اداوت و دشمنی افکندیم و خداوند زودی آنها را از آنچه انجام انجام میدادند آگاه خواهد ساخت یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا من ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاكم من الله نور وكتاب مبين اي اه اهل الكتاب بتحقيق بيامبر ما بسوي شما آمد تا بسیاری از حقایق از کتاب آسمانی را که کتمان کرده اید برای شما روشن سازد و از بسیاری درگذرد به راستی از جانب خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه با ويهديهم ويهديهم الى صراط مستقيم خداوند به وسیله آن کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه های سلامت هدایت می‌کند و به فرمان خود آنها را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی می‌برد و آنها را به راه راست هدایت می‌کند لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم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 والله على كل شيء قدیر کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند بگو اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند چه کسی قدرت بر جلوگیری دارد فرمان روای و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست هرچه بخواهد می‌آفریند و خداوند بر هر چیز تواناست وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمْ من, مَنْ خَلَقُ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والأرض وما ما بینهما و المصیر یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب میکند بلکه شما هم بشری هستید از آنچه آفریده است هر کس را بخواهد می آمر زد و هر کس را بخواهد عذاب میکند و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست و بازگشت همه به سوی اوست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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ای اهل کتاب پیامبر ما پس از فطرتی از پیامبران به سوی شما آمد که حقایق را برایتان بیان کند تا مبادا روز قیامت بگویید نبشارت دهنده ای به سوی ما آمد و نبیم دهنده ای. پس به تحقیق اینک پیام بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمده است و خداوند بر همه چیز تواناست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 و آتاکم ما لم یؤتی احدا من بیاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که در میان شما پیام برانی قرار داد و شما را فرمان روا قرار داد و چیزهایی به شما بخشید که به هیچ یک از جهان یاد داده بود يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اي hey قوم به سر مقدس که خدا برایتان مقرر نموده است وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید که زیانکار خواهید شد قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها و اینَّ لن ندخلها حتی یا خجومهفائ یا خجومها فن داخلون گفتند: ای موسا بی گمان در آنجا قومی زورمند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمیشوییم تا آنها از آن بیرون شوند. پس اگر آنها از آن بیرون شوند، قطعاً ما وارد خواهیم شد قال رجلان من الذين يخافون ان عَمَ الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم دوتن از مردانی که از خدا می و خداوند به آنها نعمت ارزانی داشته بود گفتند شما از دروازه برانن پس هنگامی که وارد شدید قطعا شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان داری. قالوا <تصال> يَا مُوسَىٰ اِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ بنی اسرائیل گفتند ای موسى تا زمانی که آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما همینجا نشستیم قال رب اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين موسی گفت پروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیافکن قال فإنها محرمه علیهم 40 سنه یتيهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین خداوند فرمود آن سرزمین مقدس تا چهل سال بر آنها حرام شده است پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود پس بر این گروه نافرمان غمگین مباش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 حابیل و قابیل به حق برانها بخان هنگامی که هر کدام برای تقرب الهی قربانی تقدیم کردند پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد او گفت قطعا تو را خواهم کشت برادرش گفت خداوند فقط از پرهیزگاران میپذیرد من تقصیری ندارم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اگر تو دستت برای کشتن من دراز کنی من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم زیرا من از الله پروردگار جهانیان میترسم این اینی ارید انت ابي بی اثمی و اثمی من أصحاب النار و ذالک من می که تو با گناه من و گناه خودت بازگردی و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین پس نفس سرکش او کشتن برادرش را برایش آراست جبه داد و او را کشت و از زیانکاران شد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 آنگاه خداوند کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند او گفت وای بر من آیا من آنقدر ام هم که همچون این کلاغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم و سرانجام پشیمان شد من أجل ذلك کتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتلن ناس جميع ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميع ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض من سبب. در بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس انسانی را بدون اینکه که مرتکب قتل نفس یا فسادی در زمین شده باشد بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد و هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و بیگمان پیامبران ما با دلایل روشن برای آنها آمدند باز هم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تجاوز و اسراف کردند اینما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اين يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم سزاي کسانی که با خدا و پیامبرش میجنگند و در زمین به فساد میکوشند فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها به عکس یک دیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت الا الذين تابوا من قبل تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا ان الله غفور رحیم. مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابی توبه کنند پس بدانید که همان خداوند آمرزنده مهربان است یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغووا الیه وجاهدوا و جاهدوا و فی سبیله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده از خدا بترسید و به سوی او تقرب جوید و در راه او جهاد کنید باشد که راستگار شوید. ان <سید> الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم یقینا کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه در روی زمین است و همانند آن متعلق به آنها باشد و همه آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند از آنان پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی خواهند داشت یوریدون این یخرجو من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم میخواهند از آتش جهنم بیرون شوند ولی نمی توانند از آن بیرون شوند و برای آنها عذابی پایدار است والسارق والساريقَةُ فقطعوا عيدهُ جزاءا بما كسبا كسب من الله والله عزيز حكيم دست مرد دزد بزن دزد را به سزای عملی که مرتب شده اند، به عنوان یک قوبتی از جانب خدا غضب کنید و خداوند نیرومند حکیم است و من من بعد ظلمه و اصلح فإن الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم پس هر کس که بعد از گناه و ستمش توبه کند و اعمال خود را اصلاح و جبران نماید، همانا خداوند توبه او را میپذیرد، بیگمان خداوند آمرزندی مهربان است. ألم تعلم أن الله لَهُ ملك السماوات والأرض يُعَذِّبُ مي يشاء يعذب مي يَشَاءُ و يغفر لمي يشاء والله على كل شيء قدير. آیا نمی دانی که فرمان روائی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد می بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است یا ایوها الرسول لا يحزن کالذین يسارعون في الكفر من الذین قالوا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 لهم في الدنيا خزيون ولهم فی الاخره عذاب عظيم ای پیامبر کسانی که در راه کفر شتاب میکنند تو را اندوهگی نسازند از کسانی که به زبانشان میگویند ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده است و از کسانی که یهودی هستند گوش سپردگان به دروغند و برای گروهی که نزد تو نیامده اند، برای جاسوسی گوش فرا میدهند، آنها سخنان خدا را از جایگاهشان تحریف می کنند، و به یک دیگر می گویند اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد، پس بپذیرید، و اگر آن را به شما داده نشد، از او دوری کنید، و هر کس که خداوند گمراهیش را خواسته باشد، هرگز در برابر خداوند برای او اختیار نداری. آنها کسانی هستند که خدا نخواست دلهایشان را پاک کند. برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و این حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین آنان گوش سپردگان دروغند و مال حرام فراون میخورند پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا از آنان روی بگردان و اگر از آنان روی گردانی به تو هیچ زیانی نمیرسانند و اگر داوری کردی با ادالت در میان آنها داوری کن یقینا خداوند عادلان را دوست دارد و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك. و ما اولائك بالمؤمنین و چگونه تو را می طلبند در حالی که تورات نزد ایشان است و حکم خدا در آن است سپس بعد از آن روی میگردانند و اینان مؤمن نیستند اننا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا سْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ فَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور هست. پیامبرانی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند بر اساس آن برای یهود حکم میکردند و همچنین پرستان و دانشمندان که حفاظت و پاسداری کتاب خدا به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند به آن حکم میکردند. پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و هر کس به احكامی که خدا نازل کرد است، حکم نکند کافر است. و کتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُ الْلَهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و در آن بر آنها مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخم را قصاص است پس هر کس که از آن درگذرد و ببخشد آن کفاری گناهان اوست و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند ستمگر است و قففینا اثاره <تصفيق> عیسی بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجیل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين و در پی آنها عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کننده تورات پیش از او بود و هدایت و موعظه ای برای پرهیزگاران بود و اهل انزل الله فیه و لم یحکم بما انزل الله فأولئیک هم الفاسقون و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند نافرمانند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 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا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 و این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب هایی که پیش از آن است و بر آنها شاهد و نگاه بان است پس به آنچه خدا نازل کرده است در میان آنها حکم کن و از هوا و حوث های آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است پیروی نکن ما برای هر کدام از شما آین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می خواست همه شما را یک امت قرار میداد ولی خدا میخواهد شما را در آنچه به شما داده شده است بیازماید پس در نیکی ها بر یکدیگر پیشی گیرید بازگشت همه شما به سوی خداست آنگاه از آنچه در آن اختلاف میکردید به شما خبر میدهد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 فائنم تولوا فعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وانك فيهم من الناس لفاسقون. و در میان آنها بر اساس آنچه خداوند نازل کرده حکم کن و از هوسهای آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر آنها از حکم تو روی گردانند پس بدان که خداوند میخواهد آنان را به خاطر پاری از گناهانشان مجازات کند و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند اف حکم الجاهلیت یبغو و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون آیا آنها حکم جاهلیت را می‌خواهند؟ چه کسی بهتر از خداوند برای گروهی که یقین دارند حکم می‌کند؟ yeah. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی بر آنان دوستان یکدیگرند و کسانی که از شما با آنها دوستی کنند از آنها هستند همانا خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشاد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 پس کسانی را که در دلهایشان است میبینی که در دوستی با آنان میشتابند و میگویند میترسیم که آسیبی به ما برسد پس نزدیک است که خداوند پیروزی یا چیزی دیگر از سوی خود برای مسلمانان پیش آورد آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتند پشیمان گردند وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَهَا الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ایمان اند آیا اینها همان که با نهایت تأکیق به خدا سوگند یاد میکردند که آنان با شما هستند اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند یا أيها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم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 یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم ای کسانی که ایمان آورده اید هر کس از شما که از دین خود برگردد به خدا زیانی نمی رساند خداوند به زودی گروهی را میآورد که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند آنان در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت و گردنفراز هستند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده اینه می حراسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد می و خداوند گوشایشگر داناست این ما الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون وهم راكعون یار و ولی شما تنها خداست و پیامبرش و آنها که ایمان اند. همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را می‌دهند. او مَن الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإن حزب الله اللَّهِ هُمُ الغالبون. و هر کس خداوند و پیامبر او و کسانی که ایمان اند را دوست بدارد او از حزب خداست. آیا حزب خدا پیروز است؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذین اوتو الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله این كنتم مؤمنین ای کسانی که ایمان آورده اید آنان که دین شما را به تمسخر و بازی گرفته اند از کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و این کفار را دوست نگیرید و اگر ایمان دارید از خدا بترسید ترسید و إلى الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذالک قوم لا يعقلون و چون به نماز ندادهید آن را به مسخره و بازی میگیرند این به خاطر آن است که آنها مردمی نابخردند قل یا اهل الكتاب هل تنقمون من نا ایلا ان امان نهبلله و, و من اون وما انزل قابلو و ان اکثرراکن فسیق بگو ای اهل كتاب آیا از ما خورده و عب می مگر ما چه کرده این جز اینکه به خداوند و آنچه بر ما نازل شده؟ و آنچه پیش از این نازل شده است ایمان آورده ایم و حال آنکه بیشتر شما نافرمان هستید قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر ما كانوا واضل عن سواء السبيل بگو ای شما را خبر بدهم از کسانی که نزد خدا کیفرشان بدتر از این است کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و بر آنها خشم گرفته و بعضی از آنها را بوزینه ها و خوگ ها گردانیده و بت را پرستیدهند اینان بد جایگاه تر و از راه راست گمگشته ترند و اذا قالوا قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به و الله اعلم بما كانوا و چون نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده ایم. حال آنکه با کفر وارد شدند و با کفر خارج گشتند و خداوند به آنچه چه کتمان می کنند آگاه و ترا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و السحت لبئس ما کانو یعملون و بسیاری از آنها را می‌بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می کنند چه بد است عملی که انجام می دهند لولا ينهاهم الرabbaniون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون چرا خداپرستان و دانشمندان آنها را از سخنان گناهالود و خوردن مال حرام نهی نمی کنند چه بد است کاری که انجام میدادند وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ماء إِلَىٰ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم طُغْيَانٌ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ القيامة. كلما ما نارا للحرب لِالحرب الله ویسعون فِالارض فسادا والله لا يحب المفسدين و یهود گفتند دست خدا بسته است دست هایشان بسته باد و به خاطر آنچه گفتند لعنت شدند بلکه دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد میبخشد و این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها می افزاید و ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم و هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش کرد و آنان برای فساد در زمین می کوشند. و خداوند مفسدان را دوست ندارد ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكَفَرْنَا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم. با چار اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیش کنند یقینا گناهانشان را خواهیم زدود. و آنها را به باغهای پر نعمت وارد خواهیم کرد. ولو أنهم أقاموا التورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة و کثیر من هم ساء ما یعملون و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را که از سوی پروردگارشان برانها نازل شده برپا دارند از فراز و فرود پاهایشان روزی خواهند خورد گروهی از آنها معتدل و میان رو هستند و بسیاری از آنان اعمال بدی انجام می دهند.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 آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر این کار نکنی رسالت او را نرسانده ای. و خداوند تو را از شر مردم حفظ میکند کند همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند. قل اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم التوراه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 بگو ای اهل کتاب شما بر هیچ آیین درستی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پا دارید و به تحقیق آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها میفزاید پس بر این گروه کافران غمگین مباش ان الذين آمَنُوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی هستند و سابه آن و نسارا هرکس که به خداوند و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد نترسی ده بر آنها خواهد بود و نه آنان اندوهگین گین شوند لقد اخذنا ميثاق بني اسرائیل و إليهم رسولا جاءهم رسول بما لا انفسهم و ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم هرگاه که پیامبری چیزی برخلاف دلخواه آنها می آورد گروهی را تکزیب میکردند. وگروهی را می‌کشتند وحسموا الا تکون فتنه فعموا و صموا فعموا و صموا ثم تاب الله علیهم ثم عموا و صموا كثير منهم والله الله بصیر بما یعملون و پنداشتند که آزمایش و مجازاتی در کار نیست لذا کور و کر شدند سپس توبه کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت باز بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند به آنچه انجام میدهند بیناست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 انهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم النار وما للظالمين من آنها گفتند خداوند همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند در حالی که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست پرستش کنید همانا هر کس به خداوند شرک آورد خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران را یاوری نیست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 آنها که گفتند خداوند سومین سلاسه است به یقین کافر شدند معبودی به حق جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه میگویند باز نایستند قطعا به کافرانشان عذاب دردناکی خواهد رسید افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم آیا به سوی خدا باز نمیگردند و از او طلب آموزش نمی کنند و خداوند آموزندی مهربان است مل مسیح بن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه و امه کانا الطعام انظر كيف نبین لهم الايات ثم انظر انا لا مسیح پسر مریم فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز فرستادگان دیگری بودند و مادرش زنی راستگویی بود هر دو غذا میخوردند بنگر چگونه نشان ها را برای آنها روشن میسازیم پس بنگر چگونه از حق بازگردانده میشوند قل تعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العلیم بگو آیا چیزی را به جای خدا میپرستید که دارای سود و زیانی برای شما نیست و خداوند شنوای داناست قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْتَدُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ أَيُّ أَهْلِ كتاب در دین خود به ناحق قلوب نکنید و از حوزهای گروهی که از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نکنید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیس بن مریم ذلک بما عصوا وكانوا کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و ایسا پسر مریم لعنت شدند این به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و تجاوز می نمودند کانو یتناهون عن منکرین فعلوه آنها از کار زشتی که انجام می دادند یک دیگر را نه نمی کردند قطعاً بد کاری انجام می دادند ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بسیاری از آنها را میبینم که با کافران دوستی می کنند. شبد است آنچه نفسهایشان برای آنان پیش فرستاده است که خداوند بر آنها خشم بیاورد و آنان در عذاب جاودانه خواهند ماند ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی و ما انزل الیه اتخذوهم اولیاء مدخذوهم اولیاء ولیکن کثیرم منهم فاسقون و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان میآوردند آنان را به دوستی بر نمیگزیدند ولی بسیاری از آنها فاسقند لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ منهم قِسِّيسِينَ و وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ به یقین دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشکن خواهی یافت و نزدیک دوستان به مؤمنان را کسانی یابی که میگویند ما نسارا هستیم این به خاطر آن است که از میان آنها کشیشان و تارکان دنیا هستند و آنها تکبر نمیورزند